الذي الازي يملأ الأرز قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم وقاتليهم وظالميهم أجمعين من الأولين والآخرين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جاله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين باذن تششور الشأسد که در خلق عالم است، بازین چه نوحه و چه عذا و چه ماتم است جن و ملک بر آدمیان نوه می کنند گویا ازای اشرفه، اولاد آدم است، ماه محرم و ماه ازای الله خدا را شاکریم، عمری داد دوباره درک بکنیم نوکریه عبا عبدالله الحسین و اهل بیت مظلومش را امشب خدا خلقت را ازادار کرده عرش خدا سیاه پوشه آسمان ها سیاه پوشند منتها بچه شیعه با معرفت دلش اون جایی که برود قلب داغدار پیغمبری قلب داغدار فاطمه زهراست، قلب داغدار امیرالمؤمنین امشب دل سوخته امام زمان ان الله به احترام جد مظلومش کوشه چشمی و نظر لطف و عنایتی به این مجلس داشته باشد به امضای قبولی حضرتش برسد ما هم از همین جلسه اول از همین شب اول محرم هممون نیت کنیم خدایا سواب این مجلس هرچه هست صرف تأجیل فرج آقامون بگردد شرط ادب را بجا جا وریم جهت جلب توجهات و اینایات خاصه امام زمان به مجلس و محفل تسلای قلب داغدارشون تعجیل فرجشون سلوات قرایی تقدیم کنیم یکی از اون اتفاقات ناگواری که در بین ما یعنی جامعه شیعی افتاده و اثرش را هم گذاشته دو نکته که میخوام عرض بکنم در دین شناسی ما اسلام شناسی ما و در مقابل او قدرت و قوتی که پیدا میکنیم چقدر قدرت داریم از مذهبمون دفاع کنیم دو تا مشکل جدی پیدا کردیم یکی اینکه تاریخ صدر اسلام به صورت صحیح به دست خیلی آمون نرسیده و من و شما میدانیم خیلی از معارف شیعه خیلی از ادعاهای ما در بستر تاریخ صدر اسلام شکل گرفته اگر او صحیح به دست ما نرسد ما انحراف پیدا میکنیم و دومی نکتهاش اینه که تحلیل درستی گاهی نداریم از اون تاریخ صدر اسلام قصه گفتن یه چیزیه یه وقت من قصه کربلا رو بگم به شما یه وقت من و شما بشینیم این قصه کربلا رو با هم ارزیابی بکنیم بسنجیم تحلیل بکنیم از توش مطلب در بیاریم از توش اعتقادات در بیاریم خب من چهره ها رو که نگاه میکنم جمعی از عزیزان ما مکرر خدمتشون بودیم و شاید من عرض کردم یکی از انحرافات جدی درون مذهب ما شیعه یه است. من اسمشو میذارم سنی زدگی یعنی مثل من شما نماز میخوانند اشهدو انه علیم ولی هم میگن محرمم مشکی میپوشن ازاداریم میکنن ولی بستر فکریشون بخشیش فکر سنی سنی زده است این سنی زدگی اتفاقا دو شاخصش همین دو کلمه ایست که گفتم سنی زده ها یک تاریخ صدر اسلام را دستکاری می به خورد من رو شما میدن تحریف می به خورد بچه شیه دو تحلیل های ناروا ارائه می کنند تحلیل های نادرست ارائه می کنن. نمونه هاش هم زیاد داریم شاید شاخصش مربوط بشود به قصه سقیفه و بعد صقیفه در دوران 25 سال خانه نشینی امیر المومنین واقعا تاریخ زندگی امیرالمؤمنین درست اینا روایت میکنن اگر دقت بکنید میبینید که دستکاری میکنن امیرالمؤمنین را وزیر خلفا معرفی میکنن که نبود امیرالمؤمنین را همکار خلفا معرفی میکنند که نبود امیرالمؤمنین را مشاور خلفا معرفی میکنند که با یه مقدار توضیحات من ارز میکنم نبود نهایتا یه تحلیلی انحرافی از زندگی یک معصوم که در مقابل خلافت ظالمانه و قاسبانه سه خلیفه اول اسلام چه کرد دستور اسلام چی بود تحلیل چی بود جریان سیر پیدا می کند از صبر از تقیه این دو اصطلاح کلام امیر المومنین قرآنه به همکاری زیر و رو میکنه باورهای بابرهای ما من اینو مقدمه از کردم حادثه آشورا در سال 61 هجری به دست بنی اومیه و یزید ابن معاویه یه دو سه تا حد تحلیل و پیش زمینه قبلی لازم داره بچشی اینا را بدانت خیلی از احده شبهات برمیاد راحت گول نمیخوره من باور کنید این اواخر یعنی این دو سه سال اخیر شبهات که علیه سید الشهدا مطرح میشه سلام الله علیه. من دوران جوانیم یعنی عمر طلبگیم به ذهنم نمی آمد یک روزی بین شیعه این سوالات مطرح میشه. آب میشم میرم زیر زمین که من طلب چرا نتوانستم خوب حرف بزنم خوب تربیت کنم خوب معرفی کنم سیروشه دار که آخرش این حرفا مشتری پیدا بکنه آخرش بگن دعوای امام حسین و یزید دعوای دو تیره ادنانی و قحطانی عرب بود دعوای تایفی بود و بکشیه بلو باور نمی کند نتواند جواب بده لذا ناچاریم برگردیم باقیم در حد وصعه وقت منبر که امشب من دیر رسیدم خدمتتون و خیلی فرصتم زیاد نیست مختصرتر عرض می کنم بنی امیه صدر دشمنان پیغمبر بوده پیغمبر ما را ابو جهر ابو شما این دشمنانی که شنیدید در طول تاریخ از همون اول پیغمبریش اما اونی که اون بالا رهبری میکرد، کرد اده و اده سرباز لشکر فرمانده اسب شمشیر پول او بنی اومیه بود این شروع تاریخچه بنی اومیه تمام جنگ های پیغمبرم با مشرکین فرماندهش ابو صوفیان بود و ابو سفیان بزرگ بنی امیه بود اینام تا زور بالا سرشون نیامد شهادت این نگفتن تا سال هشتم هجری سال فتح مکه اینا همین جوری رو در رو با پیغمبر می جنگیدن. اما وقتی دیگه پیغمبر غلبه کرد دیدن راهی ندارن زورشون نمی چربه مکه هم افتاد به دست پیغمبر ابو سفیان هم گفت ان لا و الله اله الا الله و ان محمد الرسول الله صلی الله همین جوری کجدار و مریض مدارا میکردن تا پیغمبر از دنیا بره تو قصه چه این که ارز میکنم هم برای افرادی که میخوان شیخین و تبره کنند هم برای اینکه که شیخین را از بنی اومیه جدا کنند به درد میخوره. این که میگن بد به ما گفتند دروغ به ما میگن تاریخ صدر اسلام رو دسهای تو کاره یکیش اینه تو قصه سقیفه آقا جان این دو جریان دست به دست هم بودن این معلوم بشه منتها ابو سفیان نمیتونست بیاد تو پیشانی کار بگه منم میخوام خلیفه بشم چون ابو سفیان اون روز در چشم مسلمان آبرویی آبروی نداشت ای نداشت مسلمان ها میگفتن تو بیست و سال با ما جنگیدی الان که بیای خلیفه بشی که نمیشه نمیپذیرن هیچکس کس نمیپذیره لذا مدعی خلافت نشدند اما دقت میکنید من پشتیبان اقتصادی و مالی شیخین بنی بوده شیخین که قصب کردند تو ثقیفه خلافت رو خلافت پول میخواد یا نمیخواد خلافت گردش مالی میخواد یا نمیخواد خلافت هزینه داره یا نداره ابوبکر از کجا میآورد هزینه خلافت رو میدانید پدرش مگس چران پولداران مکه بوده بنی تیم که قبیله او بوده قبیله بسیار ذلیل و ضعیف و فقیر پولی نداشت دومی هم همینطور بوده تیم و عدی هر دو قبیله ذلیلی زلیلی بودن این پشوانه مالی حکومت اینا کی بود؟ در یک تفاهم نوشته یا نانوشته عباسوفیان معلوم باشیم بنیومیه از اول با پیغمبر مشکل داشتن از اولم با امیرالمؤمنین مشکل داشتن از اول هم دستشون با شیخین توی یک کازه بود اینو تاریخ نمی نویسد اینو سنیزده ها به من و شما نمیگن این تحلیلی است که میتونه خیلیا ها رو رسوا بکنه حرکت یک حرکت تا که تا زمانی که اولین امکان فکری باز بشه که اینا پاشون تو حکومت بیاریم او تو مدینه نمیشه مدینه مردم بنیومگیه رو میشناسه او تو مکه نمیشه او کجاست؟ یه جای دوردستی باید باشه که مردم اونجا قضایای اختلاف داخلی بین مسلمان ها رو نمی دونن رو ندیدن بد رو ندیدن خیبر رو ندیدن خندق رو ندیدن جنگ ابو با پیغمبر رو ندیدن ابو صوفیان رو نمی شناسن فکر می کنن اینم صحابه پیغمبره او کجاست او تو شامه شام اواخر عمر خلیفه اول علیه الله و اوایل عمر دومی علیه الله فتح میشه. مردم شامم دستن. سوریه کجا؟ هجاز کجا؟ الان هم شما نقشه رو نگاه بکنید دمشق کجا؟ مدینه کجا؟ مکه کجا؟ خبر ندارن اصلا اونجا میشه ما پای بنی اومیه رو باز کنیم به حکومت لذا اولین استانداری که بعد از فتح شام براش منصوب میکنم پسر ابو صوفیان یزید ابن ابو صوفیان. او به واسطه چند ماه فاصله کمی به درک واصل میشه نفر بعد استاندار بعدی معاویت ابن ابو یعنی معلوم باشد پای بنی اومیه را به خلافت اسلامی اینا باز کردن درست شو؟ این تحلیل ساده و این اطلاعات ساده خیلی ها را بیدار میکنه او موند اونجا ابن ابو ابوسفیان موند از سال حدود سیزده هجری قمری موند استاندار بود تا سال چهل هجری قمری که امیر به شهادت رسید و او رسما بعد از غضایای ما حسن مجتبا علیه السلام خلافت رو کلا به دست گرفت شام را و دمشق را کرد مرکز پایتخت خودش بیست سال هم حاکمی بر مقدرات کل عالم اسلام بود تا قضیه کربلا که چند ماه قبلش مرد پسرش و گذاشت این قضایی ها پیشان در رأس حرم و پرقدرت تر از او قصه عثمانه خب دو سال و سه چهار ماه ابوبک خلافت کرده ده سالم عمر خلافت کرده حدود سیزده سال تو سیزده سال یه مقدار اوضاع عوض شده یه چیزایی فراموش شده مردم به چیزهای جدیدی عادت کردن الان میشه قرزمونو به بنی اومعی پس بدیم الان میشه اون همه حمایت مالی و اقتصادی و اده و عده که در اختیار اولی و دومی قرار گذاشته بودن که حکومتشون تثبیت بشه الان بیان میگیم آقا مال خودتون لذا نقشه کشید که یکی از بنی اومیه بیاد خلیفه بشه و او آدم نمیتونست ابو باشه به دو دلیل چون ابو پیر شده بود نابینا شده بود دومم بدنام بود چهره شاخصی بود خب ابو صفیان تو رئیس قبیله ما به تو بدهکاریم قرار این حکومت اسلام رو به بنی بنیومهیه تحویل بدیم به کی تحویل بدیم که سر و صدای مردم در نیاد به یه آدمی که مردم روش خیلی حساس نیستن به یه آدمی که مردی نبود تو عرصه میدانهای قبلی که کاری از دستش بر بیاد یه آدم بخور و شکم خالی کن به تعبیر امیرالمومنین در خطبه شخشریه یه آدم بی خاصیتی مثل عثمان اما عیبی نداره از ما باشه از بنی امیه باشه حرفهای ما رو اجرا کنه خودش خیلی هم شخصیت نداره مهم نیست لذا آقا مردم رو عثمان حساس نبودن مردم چیزی از عثمان ندیده بودن قدر نبود نه فرمانده جنگی بود نه سیاستمدار بود اما از بنی اومیه لذا در یک تبانی باز با بنی اومیه شخصیتتون رو تون رو معرفی کنید عثمان رو معرفی کردم مردم هم روش خیلی اساس نیستن و هم با نقشه شورا شد خلیفه اما گرداننده بنی اومین ریش سفید و تصمیمگیر اول ابو سفیانه وقتی عثمان خلیفه شد نشسته بود تو مسجد کورم شده بود از دور جوانا جوناف می گفت فرزندانم به بنی اومینه می فرزندانم کسی اینجا نیست قریبه ای نیست همه خوديان نامحرم نیست گفتن همه خوديان حرفاتو بزن گفت و لذی احلفو بهی ابو سفیان به اون بوتی که من ابو به اون بوت قسم میخورم به خدا که قائل نبود به ظاهر شهادت اینو گفته بود لا و ولا نار نه بهشتی هست نه جهنمی و بعدها ها نویش سرود که لا خبرون جا اولا وحیون نظر نه وحی نازل شده نه خبری از آسمان آمده. دعوا دعوای قدرت بود دعوا دعوای حکومت بود بین مای بنی و به فرزندان هاشم الان کار دست ما افتاده دیگه نزارید اون قدرت از دست ما در بره تلقفوها تلقفل کره امروزم هم عربا به توپ فوتبال و والیبال میگن کره اون روز هم از قرار معلوم یه چیزی گرد برای بازی و اسباب بازی بوده بین عربم به همین اسم لذا گفت تلقفوها تلق قفل کره مثل توپ به هم پاس بدید که از دست ما خارج نشه بعدم روز که شد گفت دست منو بگیرید ببرید کنار قبور شهدای احد آوردن نابینا گفتن رسیدیم اساسو میزد برای سنگ قبرهای شهدای احد و قبراشون گفت بلند شید. شما خون دادید به خاطر اسلام شما با ما جنگیدید فکر می کردید قربتن الله برای این اسلام ببینید به چه روزی افتاده شما جان دادید شما خون دادید ما صاحب شدیم اسلام الان دست ماست قدرت این اسلام افتاد دست ما اهانت کرد به قبر حضرت حمزه سید الشهدا اهانت کرد به قبر شهدای احد و این همون رویه است همون طرز تفکر است که این ایام بعد شهادت سید الشهدا سال 61 که اجری قمری وقتی خبر شهادت و حادثه کربلا رسید به مدینه که حسین را کشتن امر ابن سعید از بنی بنیومیست استانداره رفت بالای منبر پیغمبر تو مدینه مسجد النبی رو کرد به قبر پیغمبر با کمال جسارت و وقاحت گفت یومون به یوم بدر یا رسول الله انتقام روز بدرمون رو از علی و اولاد علی گرفتیم دوا این دواست این عثمان حکومتش رو کرد و به درک واصل شد چهار سال و نه ما هم حکومت امیر به ظاهر قدرت دست امیر بود اما فرهنگ این مردم مال اونا بود مردم آدم اونا بودن لذا تو جنگ سفرین زیر بار کلام امیرالمومنین نرفته دست اونا تربیت شده بوده. بعد شهادت امیرالمومنین هم 20 سال تمام قدرت، ثروت، تبلیغات فرهنگ سادی دست ماوی است. یه نکته دیگه هم ارز کنم اینا حرفهای های ساده است ولی حرف است که غفلت بکنیم میبرندمون من امام حسین علیه السلام فقط خلاصه در آشورا نیست ده سال قبلش امامت کرده چرا ما حرف از ده سال دوران امامت امام حسین بلد نیستیم چون بلد نیستیم مقایسه صلح امام حسن میکنن سلام الله علیه با شهادت امام حسین گیر می افتیم. آقا جان امام حسین من و شما ده سال عین برادرش امام حسن سل کرده ده سال عین برادرش امام حسن صبر کرده ده سال دوران امامتش عین برادرش امام حسن مجتبی به عهدی که با معاویه بسته بودن پایبند بودی منتها دستور اسلامه روایت به این مزامین زیاده من یکیش رو عرض بکنم با هر کسی عهد بستی توی شیعه پایبند بمان ولو کان کافر کافران کانه و مؤمنان با این تابیر طرف عهدت کافرم باشه حق نداره زیر پا بذاری تو. دو کسی امانت پیش داشت وظیفه من و شمای شیعه اینه ای امانت رو حفظ کنیم و پس بدیم ولو طرف کافر باشه صاحب امانت چون کافر امانتشو بخورم نداریم چون سنی امانتش رو وردارم برای خودم نداریم تو امانت داری فرموده شیعه ما است که امانت را رد کند به اهلش و اهلش میخواد شیعه باشه میخواد کافر باشه میخواد مومن باشه میخواد منافق باشه میخواد کافر باشه و یک جمله داخل پارانتزم به شما جوانو ارز کنم سومین کلمه که تو این روایت هست فرمود شیعه ما است که بر والدین را فراموش نکند نیکی به پدر و مادرش را ولو پدرش کافر باش ولو مادرش کافر باشه مجاز نیستیم چون پدرم آدم بدیه حاج به این خاطر من نمیرم خونه بهش سر نمیزنم دستور امام ما وظیفت دستور امام صادق علیه السلام این وزیفتی بالاتر از کفر که چیزی نداری پدرت کافرم باشه وظیفه من و شما نیکی به اون پدره نیکی به اون مادره پرانتز بسته معاویه به درک واصل شد دیگه اون عهد و پیمانی که ما مثلا مجتبه با معاویه بسته بود تمام شد زمانش حالا این دو سه دقیقه آخر عرض من به اندازه 1300 سال حرف انحرافی به خردشیه دادن الانم هم گرفتاری آقا جان امام حسین تو کربلا چه کرد برای چی رفت برای کی جنگی برای چی کشته شد هزار و سال انحراف به خورده بچه دادن من نمیخوام انحرافات رو بگم جوابش رو دارم عرض میکنم تمام صحبتهای خود حضرت تاریخ صحیح رو شما تحلیل بکنم تمامش این بوده ماویه به درک واصل شد یزید اومد سرکار نامه نوشت به استاندار مدینه ولید که باید از حسین ابن علی باید بیعت بگیری برای من وگرنه باید بکشیش تمام حرف اینه میخواد زور بگه که به زور باید بیعت کنی حضرت فرمود من بیعت نمیکنه. اونام هم گفتن میکشیمت حضرت فرمود بسم الله بیشتر از این هرکس هرچی گفت بهتون دروغ گفتن میخوام صحبت رو باز کنم زور از اون طرف بود شورش نبوده ماموس کارش انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمان انما خرجت لطلب الاسلافی امت جدی اورید و ان آمره بالمعروف و عن ان المنکر و اسیر جد من شورشی نیستم من تقیانگر نیستم من علم شورش علیه یزید بر نیفراختم او داره به من میگه به زور بیعت کن منم میگم نمیشه نمی او داره میاد به جنگ من و کشتن من خیلی حرفه خیلی تحلیل توش داره و یه نکته آخر روزمون بخوانم ما و شما راجب یزید و امام حسین خب کلافت مال کدومشونه؟ اولین وظیفه شیعگیم و آقا قرآن، روایات، سنت، قدیر همه ثابت میکند حکومت مال محسومه، حکومت مال امیر بعدش مال امام حسینه، بعدش مال امام حسینه اما یه وقتی میرسد دقیقت کنی جوانا، یه وقتی میرسد شما اینقدر وقت بر استدلال ندارید یه وقتی میرسد مردم مخاطب شما اینقدر خلن اینقدر نفهمن که استدلال قرآن بیدارشون نمیکن، عقلشونم بیخ بسته امام حسین تو آشورا از راه دومی استفاده کرد لذا وقتی حاکم مدینه گفت باید بیعت کنی کلام حضرت رو نگاه بکنید شروع نکرد قدیر و آیه ولایت و آیه تطهیر و یک استدلالی کرد به او که هر خلی میفهمید هر نفهمی میفهمید اگر یک ذره عقل و هوش و فرقی با حیوانیت هنوز داشته باشه میفهمید فرمود ایها امیر یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل و نفس المحترمه مؤلن للفزق مثلی لا یبایو مثله آخر آدم حسابی جامعه مسلمین یزید داره شراب میخوره چطور از من توقع دارید با او بیعت کنه رجلون فاسق آشکارا و فجور میکنه معلن للفزق فسقش علنی قاتل و نفس محترمه آدمای بیگناه رو میکشه شما چطور از من میخواید با او بیعت کنم دیگه از ولایت عبور کرد از اسمت عبور کرد از علم عبور کرد از غدیر عبور کرد بابا میبینید که این آدم شرابخوره این که دیگه همه میفهمن که این که آیه قرآن نمیخواد این که استدلال نمیخواد میبینید آدم های بیگناه رو بیگناه بیگناه میفرسته بالای دار علنی گناه میکنه علنی قماربازی علنی سکبازی علنی میمون بازی. علنی زنای با محارم در کاخش رواج داره مثلی لایبای و مثله مثل منی نفرمودم من معصومم من علم غیبنم. نه مثل منی یا آدم از من چه توقعی دار؟ چما جامعه مسلمی از حسین ابن علی چه توقعی داری؟ توقع آدم درستی باشم درسته یا نه؟ شیعتون سنیتون هر هر کی هستی سنی هم هستید. از من پسر پیغمبر توقع ده من آدم درستی باشم مثلی لا یا مثله مثل منی با مثل اوی بیعت نمی کنه سمیت جدی رسول الله یقول الخلافت و محرمتون علا آل عبی صوفیان روزمون بخوانم من معمول شبهای اول محرمم میرم برای اینکه شب اول محرمه بتونم بگم شخص اول خلقت خودش برای حسین ابن علی گریه کرد هفت سال با جدش پیغمبر زندگی کرد. تو این هفت سال به هر مناسبت این فرزندو بغل میکرد گریه میکرد پیغمبر بچه رو دادند و آغوش پیغمبر تازه به دنیا آمده جعلا یقبلو نهره و صدره علمای مجلس شاگردی میکنم محذرشون جعله با فعل مزاره میاد یعنی هی پشت سر همین این کار انجام میداد مردم دیدن هی سینه رو میبوسه هی زیر گلو رو میبوسه یه سینه بوسید پیغمبر زیر صبح اسب ها مالش کردن استخونه های این سینه رو شکستن یه سینه ای هم داریم پیغمبر بوسید اون سینه بین در و دیوار با مسمار سوراخش کرد یه صورتی را بوسید پیغمبر روز آشورا اون صورت رو از بدن جدا کردم با لبتش اما امشب یه جایی گفتم بذارید برای شما بگم تو عمرم شاید اینو نتونسته بودم بگم فقط این نبود وقتی تو گودی قتلگاه آقا رو احاطه کردن بعد دو جمله من بالا منبر بگم سرشو بالا لب تشنه از بدن جدا کردن آی مردم اگر حیا نمیکردم بازتر میکردم اونجا اینقدر چیلی به سید و شهدا زدن یا <عزدان> <تصفيق cuts> <تصفيق> رسول الله منو ببر اینقدر با نیزه به رگاه‌های گردنش می‌زدن. به صورتش اینقدر نیزه زدن. جای سالم نبود. یه صورت دیگری هم پیغمبر بوسیده بود. اونم میان کوچه، اون ثانی ملحون، اینقدر چپ و راز به این صورت سیلیزه. جالی و قابلوند و سدره لازمی است که روام را جمعه می بوزید. گریم می کند. می عزیزون علیه یا آب ابردالله. نمی‌جامم ازم زبان داریم تو مجلس می‌آمده. وقتی یکی مقد به یک نازدانش بگه من خیلی مصیبتت برام سنگینه. نمیتونم طاقت نم ندارم. میگه عزیزون علیه. بگم من فرمود است که تو خیلی برای من سنگینه خیلی المصیبت سنگینه جان مالی ولی یزیدی یا اما عبدالله بذارم من با یزید چه کرده بودم اما جمله آخر عرضم عزیز دلم حاجهای قاسمی تشریف دارن ادامه روزه رو هم استفاده میکنیم عرض میکنم یا رسول الله درسته، سوختی، گریه کردی آتش گرفتی اما اون بدنی که شما بوسیدی سالم بود اون سینهی که بوسیدی سالم بود اون نهری که بوسیدی سالم بود اما دخترت زینب یه روزی آمد با همین بدن خدا حافظی کنه من چون دیدم ارض میکنم خواهرانی که میخوام با جنازه برادر خود حافظی کنن که میخوام من خیلی تلقین خوندم برای مهید میگن اول بذارید خواهرش بیان ببینن اولین چیزی که میگن میگن حاجقا بگو کفن رو باز کنن صورت برادرم رو بروزن تو خونه رفتم میگن حاجقا میشه من دست برادرم رو بروزن زیلم بگا صورت برادر رو ببوسه برادر سر در بدل نداره لاجرم گفت دست برادر رو میدارم و میبوزم تا خواست دست برادر رو وردارد دید دست برادر رو خط کردن انگشت انگشت رو هم بریدن لذا دیگه چاره اش از همه جا <تصفيق> نبار را گذاشت روی نگاه یا برید یازل موزید آن جایی که پیغمبر نبوسید ایی در نبوسید زهرا نبوسید حتی نسیم صحرا نبوسید لاذ کللا